هفته. دیگر چیزی نمانده است که به شما نگفته باشم اگر پس از سه سال که در تبعید به سر برد این پرده را نمی‌فرستاد، شاید من اصلا حرف دیگری نداشتم بزنم شاید اگر این پرده به تهران نمی‌آمد و من از وجود آن خبر نداشتم آشنایی با این نقاشم مثل سایر حوث های دیگری که تا آن زمان داشتم به کلی از یادم رفته بود اگر من قسمتی از عمر خود را فدا کردم اگر از همه چیز خود گذشتم این دیگر گفتن نداشت. دلم خوش بود به اینکه که یک بار در زندگی گذشت کردم و با این محرومیت سعادت و سلامت انسان از خود مفیدتری تری را خریدم. اما این پرده با این چشمایی که او از من ساخته دیگر زندگی مرا برای همیشه زیر رو, رو کرد. پس از حادثی آن شب در کنار نهر کرج و گفتگو با او در آتالیش یقین کردم که دیگر فقط از یک راه قلب او به کرد دیگر نگاه و زیبایی و آرایش و دلبری در او تاثیر نداشت. اینها همه مثل سنگی بود که به پنبه پوش بخورد. این اکاس که ندارد هیچ خود سنگم لابلای پنبه گم می شود. من فقط می توانستم با کوشش و تلاش بیشتر با فداکاری های بزرگتر جای خودم را در دل او باز کنم. اما در عین حال احساس می کردم که هرچه علاقه او به وجود و فعالیت من بیشتر می شد کمتر به من فرصت میداد که از میوه عشق او برخوردار شوم از آن زمان به بعد دیگر هفته ای دو سه بار به خانهش میرفتم. همیشه من بهانه ای پیدا میکردم و پیش او میرفتم. همیشه من تلفن میکردم و از او وقت میگرفتم یک بار هم نشد که مرا دعوت کند اما وقتی پیشش میرفتم یا با تلفن با او گفتگو داشتم بوی آشکار بود که از دیدار من خوش است و با ذوق و شوق مرا میپذیرد گاهی او مشغول کارش می شد و من آنجا می نشستم و تماشا می کردم. گاهی کتاب می خاندم. زمانی با هم صحبت می کردیم. از گذشته خودش برای من صحبت می کرد و من می از او در بیاورم که در مواقع مختلف چه تصوراتی در ذهن او از من نقش بسته است. گاهی درباره کارهای عادی که با هم داشتیم مذاکرات به میام می آمد. با دقت حرفهای مرا گوش می داد. مخصوصا وقتی که ممکن بود. خطری را متوجه من کند صحبت می کرد تمام جوانه به آن را روشن می زاخت. همیشه استنباطم هم این بود که از لحاظ جریان کلی کار دقیق و خوردهگیر است عبدا به دلم برات نمی شد که علاقه به وجود من او را انقدر باریک بین و مراقب می زازد. وقتی از خاطرات گذشتش برایم می گفت لحن نرم و قمزده ای داشت برایم مفصل حکایت کرد که چطور با آقا رجب آشنا شده است و چگونه به این مرد. بیش از هر کس دیگری اطمینان دارد. آقا رجب در نظر او از دهاتی های پروفا و همه همدان بود که با مقاش هم چیزی نمیشد از او درآورد. او هیچ وقت نمی خواست و به من میدان نمیداد که از گذشته خودم برای شکایت کنم. پس از آن ای که آن روز کرد و من جرأت رازگشایی نداشتم دیگر هرگز به من فرصت نداد مگر در مورد رئیس شهربانی و آنجا هم باز علاقه به زندگی من نبود که او را متوجه گذشته من کرد. آنجا هم در فکر کار و موفقیت خودش بود. ببینید وقتی میگویم کار خودش مقصودم خودخواهی و خودپرستی نیست. تدریجا در امور سیاسی به حدی محرم او شده بودم که گاهی در حضور من از آقا رجب سوالاتی می‌کرد و به او اجازه میداد، مطالبی را که به هیچکس اجازه نمیداد، بشنود بگوید. پس از هفتش ما که در خانه او آمد و شد داشتم، روزی موقعی که من کنار بخاری در اتاق نشسته بودم، آقا رجب سراسیمه وارد شد و گفت: آقا یک دقیقه تشریف بیاورید بیرون ارزی داشتم. استاد گفت: چه خیره؟ همینجا بگو. رجب با چشمای وحشت زده گفت: فرهاد میرزا را دیشب گرفتند. استاد پرسید از کجا فهمیدی؟ گفت: الان که رفتم بسته شما را به رابطش بدهم به من خبر داد که دیشب بایستی او را گرفته باشند. یا اقلا خطری باید متوجه او شده باشد. پرسید از کجا معلوم است که او را گرفتند؟ رجب جواب داد: این را رابطش نمیدانست. این را من فهمیدم. استاد هنوز آرام بود یا حداقل آرام می نمود در صورتی که مرا ترس برداشت. از آقا رجب پرسید: خانه‌اش را هم تفتیش کردند؟ رجب گفت: بله آقا. پرسید از کجا می دانی آقا رجب جواب داد: قرارشان این بوده که هر خانه اش امن نیست، گلدان شمدانی که در کاغذ سرخ پیچیده باشد دم پنجره بگذارد. و امروز صبح یک گلدان شمدانی در پنجره بوده است. استاد پرسید واس از کجا فهمیدی که او را دیشب گرفتند؟ نوکرش جواب داد از همسایه هایش پرسیدم. تو پرسیدی؟ بله آقا. از جایش بلند شده با تحکم پرسید. کی به تو گفت آنجا بروی؟ آخر آقا توی خانه او خیلی چیزها هست. میخواستم کاری بکنم. رجب مگر تو دیوانه شده ای؟ تمام بدنش میلرزید. نخست این بار بود که او را آنقدر آشفته و خشن دیدم. هرگز تصور نمی کردم تا این حد تواند اختیارش را از دست بدهد تخت شسی را گذاشت روی صندلی رو سفیدش را در آورد و نشست و به آقا رجب گفت برو دیگر گلی به آب دادی اینجا ای چه بکنی؟ کمی آرام شد و گفت اگر اوراق و و ماشین پولکاپی گیر افتاده باشد خیلی بد می شود باید فهمید که چطور او را گرفتند با این بی‌احتیاطی ممکن است گلی به آب بدهد و کار همه ای ما را زار کند. مرا ترس برداشته بود اما نه برای خودم. من اگر یقین داشتم که گرفتار میشوم و در عوض او مرا دوست خواهد داشت خوشحال میشدم. کمی در اتاق راه رفت. بعد رجب را صدا زد. از او پرسید: از کجا فهمیدی که خانه اش را تفتیش کردند؟ رجب آرام جواب داد: وقتی فرهاد میرزا را با یک اتومبیل به خانه آوردند خودم سر خیابان ایستاده بودم. پرسید کی؟ گفت همین یک ساعت پیش. به ساعتش نگاه کرد و پرسید: الان چه ساعتی است؟ یک ساعت بعد از ظهر بود. فرهاد میظتا رو دید. بلاغ علامتی هم داد. نخیر آقا. هیچ به روی خود نیاورد. اما وقتی برمیگشتن از توی اتومبیل نگاهی به من انداخت. مثل اینکه خوشحال بود از اینکه شما از گرفتاریش خبردار شده بودید. رجب نفهمیدی که از خانش چه بردند. رجب گفت من سر خیابان رئی ایستاده بودم و خانه او عواسط کوچه است. نفهمیدم در اتومبیل چیست. خیلی بدکاری کردی. خیلی آقات مرا را تلخ کردی. مگر چون این قراری بود که هرکس کس سر خود کار کند. دیگر است که شده. اگر گیر بیفتی تقصیر خودت است. حالا باید کاری بکنیم. اگر اسباب و اوراق را برده باشند که هیچ اگر نبردن باید فهمید که کجاست قرار بود که آنها را در همین دو سه روزه به جای دیگری منتقل کرده باشند نمیدانم آنها را کجا بردند. دو چیز را باید بفهمیم یکی اینکه او را به چه اتهامی گرفتند و دیگران که اسباب و لوازم کار ما را بردن یا نه آن وقت می فکر کرد به رجب گفت جایی نه رو کمی فکر کنیم آقا رجب که از اتاق بیرون رفت من گفتم چه شکلی میخوایید بفهمید که چطور فرهاد میثارو گرفتند گفت باید از خودش پرسید پرسیدم چطور می‌خواهید از خودش بپرسید گفت باید کسی را به اسم یکی از کسانش به زندان بفرستیم فکری به خاطر من رسید گفتم با کام من میروم به زندان تو آره من گفت نه نه نه این کار تو نیست گفتم چرا برای اینکه من بی عرضه هستم شما هیچ وقت دشوار به ما رجوع نمی کنید. مگر خون من از خون آنهای دیگر رنگین است گفت صحبت از این حرفا نیست این یک کار دقیق است و نباید آدمی مانند تا را به خطر انداخت از تو باید برای کارهای دیگر استفاده کرد همیشه بهانش همین بود از ارجای کارهای خطرناک به من داشت. آیا برای این بود که به وجود من دلبستگی پیدا کرده بود یا اینکه واقعا برای من اهمیت بیشتر قائل بود آن وقت گفت به علاوه فرهاد میرزا ترک زبان است. تو رو نمی شود به جای خواهر او جازت. فرهاد میرزا اسم قلابیه اوست. گفتم من میتوانم توانم نامزد یا زن او باشم. گفت اگر خودت را بگیرن چه؟ آن وقت دلم خوش است که وقتی از زندان بیرون آمدم یک بار دیگر دوید توی حرف من. اگر تو را بگیرم طولی نمیکشد که مرا هم سر نیز خواهند کرد. دیگر آن وقت هرگز مرا نخواهی دید. گفتم نه. من نمی گذارم چنگ انداخت و رو چند مرتبه با انگشتان دراز و قطورش شانه کرد. سرش را چندین بار چرخاند و گفت از دست تو کاری ساخته نیست. چطور میخوایی پیش او بروی گفتم هر جوری که تو دستور بدهی گذشته از این من با رئیس شهربانی هم شخصا آشنا هستم و یقین دارم که اگر از او چنین خواهشی کنم حتما جواب رد نخواهد داد. او را از پاریس میشناسم. خیشی دوری هم با پدرم دارد. میدانی که او پدرم را از قذبین به کربلا فرستاد. دیگر حسودیه شد. همین یک بار بود که به گذشته من اشاره کرد. پرسید او هم یکی از است که فریفته چشمهایی تو شده؟ گفتم من سراخ ندارم کسی فریفته چشمهایی من شده باشد. گفت اما من سراخ دارم. گفتم اقلا پس بگو کیست. خیره به من نگاه کرد. اما هیچ نگفت. با این نگاه های او آشنا بودم، از صورتش از حرکاتش و اخمای آن چیزی در نمی‌آمد. پس از مدتی با لحنه اعتراض اضافه کرد: چرا می‌خوای از من حرف در بیاوری؟ بگذار به کارمان برسیم. چند دقیقه در اتاق راه رفت. گاهی می ایستاد و مبهوت به من نگاه می‌کرد. سرش را تکان داد و بعد باز روبروی یکی از تابلوهایش می‌ایستاد و با انگشتانش گرد روی آن را پاک می کرد و به درختان و پوشیده از برف مینگریست. ناگهان گفت فرنگیست برو برو از پیش من هر کاری دلت می خواهد بکن من فقط دو چیز را می خواهم بدانم یکی اینکه که اوراق و اسباب را هم بردند و دیگران که چطوری آن را گرفتند پرسیدم فرهاد میرزا چجور است؟ کمی درباره او صحبت کنید تا من بدانم چگونه با او روبرو شوم. آن وقت فرهاد را به من معرفی کرد. پسری بود 25-6 ساله. تازه دانشکده پزشکی را تمام کرده بود. پدرش از مالکین زنجان بوده و فوت کرده است. مادرش در زنجان زندگی می‌کند. پدرش در سابق از توفیندارهای خانه زنجان بوده و مدتی هم یاقیگری می‌کرده است. پس از کودتا به او تأمین دادند. قرآن خوان بعد از مدتی گرفتنش، و در زندان قصر، از بیتریاکی مرد. فرهاد میرزا قد متوسط دارد. در صورتش ته آبله دیده می شود. تند و عصبانی حرف میزند. شوخ و بامزه است، پا بر و با بادوام است. اما خودخواهی دارد که مخصوص به خودش است. ترسو نیست، اما تظاهر به بیباکی می کند. هر کاری را سهر می گیرد. در دانشکده هم که بود نمیتوانست جلوی دهان رو بگیرد به طوری که در محیط ترس و وحشتی که او فرما بود دانشجویان از دل دادن به گفته های او عبا داشتند عصبانیت او به حدی است که گاهی به کلی از خود, بی خود می شود. از آن جوان‌هایی است که از فرط تعصب تصور کنند با تغییر و تشدد می توان افکار دیگران را روشن کرد به هر کس که مطابق میل او فکر نمی کند و مادی اراده او نمیشود پرخاش میکند و همین ها یکی از دلایل گرفتاری او باید باشد خانه او در یکی از کوچه های خیابان ری جلوی بازارچه نایب السلطنه است اسم خودش محسن کمال و اسم پدرش هر چه فکر کرد نتوانست اسم پدرش را به خاطر بیاورد به من گفت در زنجان به اسم حاجی کمال معروف بوده اگر از تو اسم پدرش را پرسیدن میگویی چون مرده است نمیدانم اسم مادرش را هم نمیدانم. پرسیدم: عکسی از او ندارید که خودم بشناسمش گفت عکس ندارم. اما الان چندتر از او میسازم. نشست کنار میز تحریرش با مداد سیاه قطوری روی مقوای کلفت شروع که به تصویر صورت او. مثل اینکه با خودش دارد حرف میزند. عمه صورت او را با صدای بلند می گفت. پیشانی بلند دارد؟ سلفایش را یک بر باز می کند؟ میگذارد. هیچ خط لطیفی در سیمایش نیست. بینی بزرگ و لبهای کلوف دارد. رنگ صورتش تیره است و به محض اینکه عصبانی می شود تمام صورتش را خون فرا میگیرد سر نهار باز راجب او با من حرف میزد. فرنگیز کار مشکلی است. باید در همان لحظه اول تاری خودت را به او نشان بدهی که تو را در واقع نامزد خودش بداند. پسر باهوشی است و زود مقصود تو را ادراک می کند. با خودت پول همراه داشته باش. فراموش مکن که اگر به تو نو شدن با پول می توانی به آسانی رفع سو زن کنی مواظب باش بی گدار به آب نزنی میان همین آژانهای های هم ممکن است کسانی باشند که از فرط ترس نخواهند از تو که به دیداری یک زندانی سیاسی آمده ای رشوه بگیرند نگه هم با استراب کلماتش را قهد کرد ساکت شد و باز پرسید حالا چه کار میکنی؟ می یک می پیش رئیس ر گفتم نه من اول سعی میکنم کار را به دست همین خورده پاها درست کنم اگر نشد پیش رئیس شهربانی میروم از جا برخواستم ساعت دو چند دقیقه بعد از ظهر بود موقعی رفتم پرسید همین الان میخوای بروی گفتم هر چه زودتر بهتر گفت تا لباس بپوشی تصویر او هم حاضر است زمستان سردی بود من یک پالتوی پوسته قشنگی که در فرنگ خریده بودم بر تن داشتم سری سرخ رنگی به سرم بستم و پالتو پوشید دو مرتبه پیش او آمدم. گفت بیایید نگاهش کنید خوب قیاففرش را به خاطر بسوارید. قیافه به نظرم آشنا آمد. یادم آمد که این جوان سبیللا را جایی دیدم. گفتم استاد این جوان را جایی دیدم. پرسید کجا دیده اید؟ کمی فکر کردم و گفتم: این هم جوانیست که آن شب دم در سینما دنبال شما بود؟ پرسید کدام شب؟ گفتم همان شب؟ از نگاهش فهمیدم که مقصود مرا فهمید اما میخواستم به روخش بکشم گفتم همان شبی که با هم کنار نهر کرج رفتیم دستش را گذاشت روی دهان من منو نگذاشت که دیگر حرف بزنم لبهایم را جمع کردم و را بوسیدم مانند اقرب گسیده دستش را کنار کشید مثل اینکه انزجاری به او دست داد رفت کنار پنجره ایستاد و به برفی که درختان را نقره پوش کرده بود نگاه کرد در اتاق را باز کردم و بیرون رفتم. دم ایوان به من رسید. زیر بازوی مرا گرفت و از روی پله های یخصده به زمین نیفتم. موقعی که میخواست در حیات را باز کند گفت حق با شماست. خیال کردم میخواهد چند کلمه محبت‌آمیز ها میز من کند. اما اینجور نبود. فقط در فکر کارش بود. و این جرأت و فداکاری مرا یک امر کاملا عادی تلقی می کرد. حق با شماست. محسن کمال شما را میشناسد همان است که در سینما همراه ما بود حافظه خوبی دارید خدا به همراهتان یک راست به خانه رفتم لباسی که متناسب با لباسی یک نیمچه پزشک ملاک زده زنجانی اس به تن کردم و یک راست به در زندان موقت که تازه آن وقت تمام شده بود شتافتم آه آقای نازم خدا هیچ بدبختی را از و ذلیل پاسپانهای زندان نکند دلم میخواست جزئیات ذلتی را که آن روز کشیدم برایتان شهر میدادم. بدبختان وقت گذشت و علاوه میترسم که شما حوصلهتون سر برود. اما فراموش نکنید که آن تحقیر و توهینی را که آن روز برای اولین بار در زندگی نصیب من شد از چشم او دیدم. مقصودم را درست بفهمید. البته او هرگز به من نگفت که به چنین زلت و پستی تن دهم اما چه کار دیگری حاضر نبودم بکنم؟ فقط به امید آرزوی این که او را برای زندگی خود دریابم آن روز برای نخستین بار زلت و بدبختی مردم این کشور را که به دست صاحبان قدرت نصیبان آنها می شود به چشم دیدم دم در زندان موقت جمعیت زیادی در انتظار بودند. مردها با صداهای گرفته و کریه داد می زدند. زنها جیخ میکشیدند کشیدند بچه ها گریه می کردند پاسبان ها ناسزا گفتند و جمعیت را از در آهنین به زور می راندند. از پشت سر پیرمردی اسکناس یک تومانی در دست داشت دربان از بالای جمعیت آن را گرفت و پیرمرد را به زور به طرف در کشید و او را از لای در به داخل محبته زندان هل داد مردم پاهای یکدیگر را لگت میکردند به همدیگر سه غلمه میزدند هرکس میکوشید گلیم خود را از آب بیرون بکشد یک نظر برای من کافی بود که نمیتوانم جذو ها باشم از پیرزنی که یک چاشتبندی در دستش بود پرسیدم اینجا چه خبر است فهمیدم که آن روز روز ملاقات زندانیان بود. از من پرسید که برای چه آمده ای؟ گفتم که من هم میخوام نامزدم را ببینم. گفت مال شما حتما سیاسی یا است. امروز مال فقیر و بیچاره است. ها و ایان ها را امروز ملاقات نمی‌دند. قیافه من مندل پیرزن را سوزاند. آن وقت به من گفت: من به دیدن پسرم می‌روم. شوفر استادم زیر گرفته. پنج سال محکوم شده. شما هم همراه من بیایید آنجا در داخل زندان هر کاری از دستتان برمی آید بکنید دم در آهنین چند زن و مرد با پاسبانی چه رو بحث میکردند پاسبان ناسزان میگفت و باتون کشیده بود به طوری که صدایی پنجاشست نفر آدم درآمد. از سر پاسبانی که با چشمایی هی هیزش به من نگاه میکرد پرسیدم آخر چرا نمیگذارید برویم تو؟ معدب جواب داد خانم توی زندان پرست یک دسته باید بیایم بیرون تا برای اینها جا باشد گفتم بگذارید من بروم تو یک اسکناس پنج تومانی مانیکف دستش گذاشتم پرسید میخواهید که را ببینید گفتم محسن کمال را گفت چه کار است گفتم دکتر است گفت چه کار کرده گفتم نمیدانم پرسید کی او را گرفتن گفتم دیشب گفت اگر سیاسی باشد نمیشود. گفتم شما بگذارید من بروم تو خودم کاری میکنم سرپاسمان راه مرا باز کرد به دربان گفت راه بده برگشتن انعام تو را هم میدهد من آمدم این طرف پنجره جمعیت با نگاه های پر از کیین و حسد به من نگاه می کرد یک نفر که لباس شخصی تنش بود از من پرسید چه کار دارید ؟ سرپاسمان جای من جواب داد به ملاقات زندانی آمد از حسن آقا کارشان نداشته باش بگذار بروند گفتم آقای سرپاسمان مرا را بلد نیستم بیایید راه را نشانم بدهید سرپاسپان چند ای با مأمور دم در صحبت کرد آن وقت مأموری که لباس شخصی تنش بود گفت خانم اگر سیاسی باشد اجازه نمی رو کردم به سرپاسپان و گفتم اگر به توانی آقای کمال برسانی من آمه بهتری بهت می دهم سرپاسپان گفت خانم پیش صاحب منصب کشیگ نگویی است. بگویید اختلاس کرده مرد بیریخت و چرک لباسی که دمه در از من حرف می دنبال ما می آمد. سرپاسپان از او پرسید: حسن آقا. دیشب کسی را اینجا آورده اید؟ جواب داد. ما همیشه میآوریم دیشب هم داسته آوردیم. خانم شما کی را می خواهید ملاقات کنید؟ گفتم محسن کمال را. گفت حتما از همینهاییست که بیانیه پخش می کردند. شما کی او هستید؟ گفتم نامزدش هستم. سرپاسپان تنگ به گوش من گفت باید رازیش بکنید. این بیشرفات ها نگیرند نم پس نمی دهند. اما مردک باهوشتر از سرپاسپا با می نمود و برای کار خود اهمیت بیشتری قایل بود خانم شما باید اول تشیفه برید اداره سیاسی آنجا باید اجازه بگیرید و الا نمی زندانی را ملاقات کنید سرپاسپا می خواست به او آهسته حرف بزند دیگر دل توی دلم نبود معمول اداره سیاسی پرید به او تو چه می گویی؟ تو که نمیفهمی؟ زندانی هنوز خانه خودش را نشان نداده اما سرفاسبان وقتی فهمید که موضوع مهمی است به تمه افتاد مدتی با هم آهسته حرف زدن بالاخره مأمور اداره سیاسی زیر بار نرفت خانم بفرمایید بروید اداره سیاسی آنجا باید به شما اجازه بدهند گفتم اصلا به شما چه؟ چه میگویید؟ امروز صبح بامدند و خانهاش را هم تفتیش کردند معمول گفت بله اما آنجا که خانه خودش نیست. آنجا که ماشین پولکپی دارد و بیانیه ها رو چاپ کرده آنجا را میگویم گفتم اصلا چون این چیزی نیست شما عوضی گرفته اید دیگر من ماموریت خود را انجام یافته میدانستم اساسا دیدن فرهاد میرزا ضروری نبود استاد از من دو جواب میخواست چگونه و به چه می گرفتار شده آیا اوراق و اسباب را هم بردن یا نه گیر افتادن او معلوم بود یکی اورا لو داده بوده است یکی خیانت کرده بوده زیرا اداره سیاسی از وجود پالیکوپی اوراق دیگر در خانهاش خبر داشت بدون اینکه این اسباب اوراق را پیدا کرده باشد یکی پس قبلا میدانست او گفته بوده است منطحا اساسیه را قبلا از خانه برده بودند به همین جهت خانه فرهاد میرزا را صبح امروز تفتیش کردند و چون آنجا چیزی نیافتند تصور میکنند که خانه اصلی خودش را هنوز بروز نداده است معمول اداره سیاسی گفت خدا کند که ما اشتباه میکنیم در هر صورت شما باید با من به اداره سیاسی بیایید. زیرا شما نامزدش هستید. حتما خانه‌اش را میدانید حاضر جواب گفتم البته که خانه‌اش را میدانم پرسید خانه‌اش کجاست؟ قرص جواب دادم خیابان رعی کوچه جلوی با نبوسلطنه. مأمور اداره سیاسی سست شد. سرپاسما وقتی ضعف ممور اداره سیاسی را حس کرد، جرأت بیشتری یافت. دیدی بابا دیدی داری مردم را بی‌خود تو مخمسه می‌اندازی. این چه نوع است که شماها می خورید تقریبا ساعت پنج نیم بعد از ظهر بود مأمور اداره سیاسی گفت: در هر صورت اگر بخواد دور را ملاقات کنید باید از اداره سیاسی اجازه بگیرید و حالا تعطیل است بی اجازه رسمی اداره سیاسی ملاقات با زندانیان سیاسی قدقن است و هیچکس نمیتواند بگذارد که شما حبسیتان را ببینید. پرسیدم: رئیس شهربانی می اجازه بدهد گفت البته گفتم پس بگذارید من از زندان به او تلفن کنم پرسید مگر حضرت عجل را میشناسید گفتم بله از کسانی من هستند دنبال وسیله میگشتم که از شر مأمور اداره سیاسی رها شوم و اسم رئیس نظمیه و خیشی با او را برای این به زبان آوردم که مأمور را از جا در کنم و ابدا چون خیالی نداشتم که برای ملاقات فرهاد میرزا که اصلا دیگر ضروری نبود به او مراجعه کنم آخرین ای که اداره سیاسی گفت مرا متوجه فکری کرد که بدبختی من در آن است آقای عزیز تمام این داستان زندان را برای این به شما گفتم که ببینید چطور خودم دامی برای گرفتاری گستردم و زندگیم را به این روز کنونی انداختم مأمور دره سیاسی گفت اگر میشناسیدش کاری کنید که نامزدتان را مرخص کنن او البته به تنه گفت ولی برای من این فکر تازگی داشت از زندان یک راست به خانه رفتم لباسم را عوض کردم و برای نخستین بار بدون اجازه قبلی پیش را استاد رفتم و گفتم دو سال از من کرده بودید جوابش را آوردم گویی پیروزی بزرگی نصیبم شده است اینطور موفقیت خودم را به روخش کشیدم پرسید دیدیش؟ نه ندیدم یعنی نخواستم او را ببینم پرسید پس چه؟ گفتم شما دو تا سال کرده بودید جوابش را آوردم پرسید چرا گرفتندش؟ گفتم به اتهام پخش بیانیه بعد پرسید اساسی کجاست؟ این را نمیدانم. اما میدانم که در خانش چیزی از این قبیل پیدا نکردند. پرسید رفتید یک راست پیش رئیس نزدیک نه پیش رئیس نظمیه نرفتم. اگر اجازه بدهید میروم رفم. آن وقت مفصل تمام آنچه چرا که برای شما الان حکایت کردم، گفتم و ولتیجی را هم که خودم گرفته بودم با او در میان گذاشتم. یک فنجان چای داغ برایم ریخت. چارپایش رو که روی آن می نشست و کار میکرد آورد کنار بخوری. رو به روی من نشست. به طوری که سر زانوهای ما به هم میخورد. دست مرا در دستش گرفت و گفت آفرین. دخترتو خیلی دل داری. بود اشک در چشمم پر شود گفتم برعکس. من آدم بزدلی هستم. شما به من دل و جرأت میدهید. با مال ملتمس اما نساختگی مثل آدمی که برای یک چکه آب لهله میزند و دیگر نای دم زدن ندارد به او نگاه کردم از جا پرید دست انداخ زیر چانه من و با چنان شدتی که من هرگز نظیر آن را ندیده بودم به من گفت دختر اینطور به من نگاه نکن این های تو بالاخره مرا وادار به یک خبط بزرگی در زندگی خواهد کرد گفتم این خبت شما آرزوی من است جواب من صحیح بود اما او به روی خودش نیاورد و برعکس خیال کرد که میخواهم زجرش بدهم. جمله من تیری بود که به هدف نخورد اما شکار را می کرد. بلند شد و گفت تو هیچ قصدی جز زجر من نداری؟ گفتم او شما خیلی سنگ دل هستید. دیگر فایده ای نداشت. این خیال او را وسوسه می کرد و من نمیدانستم چگونه آن را از سر او بیرون کنم. گفتم شما اشتباه میکنید. میخواستم از در اتاق خارج شوم و دیگر تا مرا احضار نکند به دیدنش نروم. اما مثل جوجه که یک مرتبه خارهایش رو جمع کند آمد به طرف من دست مرا گرفت نرم و ملایم گفت فرنگیس بمان با هم کار داریم ما باید فقط دوست یکدیگر باشیم زندگی سرنوشت ما را اینطور به هم پیوند داده یک دقیقه بشین چند لحظه هر دو ساکت بودیم من کنار پنجره ایستاده بودم و او روی چار پایه نشسته بود به زمین نگاه می کرد آن وقت باز مفصل از حادثه دم در زندان پرسید از مأمورین و پاسبانان و رفتارانها با مردم صحبت کرد سپس به فکر فرو رفت که کی می توانست فرهاد میرزا را لو داده باشد می این دو سه روزه چند نفر را گرفتند جلال و عبدالو شاتر را گرفتند ولی فقط شاتر میدانست که در خانه فرهاد میرزا ماشین پولوکوپی هست و اوراق را آنجا چاپ می کنن. اما شاتر نمی تواند فرهاد میرزا را لو داده باشد. زیرا فرهاد میرزا از اوراق را به وسیله همین شاتر می توانست منتقل کرده باشد و او خانه جدید را می داند. فقط یک صورت دارد. کمی فکر کرد و گفت شاتر را شما نمی شناسید. این مرد کاهی را کوه می کند. بیست و پنج سال است که فنی نیست. خت دهنش لق است. در نظر او اینطور کارهای سیاسیبیهمیت و بچه بازی است. او فقط منتظر است که روزی یک لوکوموتیو و یک قطار پر از سرباز انقلابی به او بدهند و بگویند یالا بیافت جلو. حد میزنم که او چیزی به کسی گفته باشد. شاید هم هیچ کدام از کسانی که گیر افتادند فرهاد میزارا را لو نداده باشند و خائن هنوز میان ماست. اقلا یک ساعت با من یعنی بیشتر با خودش. درباره اینکه کی ممکن است فرهاد میثار الله داده باشد گفتگو کرد. ساعت ده بود که من گرسنه از جایم بلند شدم. با هم از خانه‌اش بیرون آمدیم. سرما شکننده بود. کوه دماون با شب کلاه سفیدش از دور جلوه میفروخت. او زیر بازوی مرا گرفته بود و ما هیچ صحبتی با هم نکردیم. دم در خانه از او خداحافظی کردم. محکم دست مرا فشار داد. احساس کردم که اهمیت من در نظر او بیشتر شده است. اما محبتی در فشار دست او نچشیدن. موقعی که میخواستم از او جدا شوم به من گفت درباره رفتن شما پیش رئیس نظمیه صبر کنید. اگر لازم شد به شما خبر میدم. در را که باز کردم دیدم اتاقا تاریک است و فقط چراغ هشتی روشن است. بیچاره مادرم دیگر عادت کرده بود. فزد سلطان شام مرا آورد. خوردم به رخت خواب رفتم و ساعتها بی کشیدم. چند روز به خانهش نرفتم. این مرد نادانسته مرا میرنجاند. نمیتوانم تصور کنم که سنجیده و فهمیده مرا شکنجه میدهد. اما رفتارش مرا می زوزند. منتظر بودم که مرا بخواهد. نخواست. تاقت نیاوردم. باز تلفن کردم. باز هم خودم رفتم. دو سه هفته پس از آن شب یک روز به من تلفن کرد و فوری مرا خواست از ساعت پنج بعد از ظهر بود. هنوز سرمایه زمستان بیداد می کرد. وقتی به خانه اش رفتم گفت تا به حال از فرهاد میرزا هیچ چیزی نفهمیدند دو سه روز است که دارند او را زحش میدهند پریشب تا ساب چندین مرتبه دستبند قپانی به دستایش زدند حالا باید درباره رفتم پیش رئیس نسمی فکری کنیم حقیقتش این است که از دیشب تا به حال دارم فکر می کنم که آیا صلاح تو و صلاح ما هست که در این امر به عمر را چه‌کنی میانه چاره ای نداریم تو خودت چه میگویی؟ دلت میخواد کمی درباره این دوست قدیمی و خیشاوند دورت برای من صحبت کنی؟ این نخستین باری بود که راجب گذشته من از من کرد و من عین واقع را برای او حکایت کردم وقتی خوب شنید گفت فرنگیس عزیز من از تو نجات فراد میرزا را میخواهم به هر قیمتی شده باید او را از زندان نجات داد بله او را خواهند کشت فرهاد میرزا کسی نیست که چیزی بگوید زجکشش خواهند کرد پرسیدم به هر قیمتی جوابی نداد خیره به من نگاه کرد. مثل اینکه عمق مطلب را درک نکرد گفتم حتی اگر به قیمت ماکان حتی اگر به این قیمت باشد که من تمام عمر خودم را به او بفروشم گفت نه نه به این گرانی